مرحوم دکتر شریعتی در نیایششون یک دعای دارن که پروردگار را به من نعمت نداشتن و نخواستن اتا نداشتن و نخواستن روزی چند سال پیش من اتفاق با یکی از شاگردان و موریدان بسیار نخبه و مشهورش اون مرحوم مرخوردی کردم و مواجه با یک حیرت اصفباری شدم این جناب که دوران یکی از مریدان بسیار مشهور و سخنگویان اندیشه اجاریتی بود به چنان سوی تفاهمی افتاده بود در قلمرو روح اراده و قدرت و با چنان بامبستی رسیده بود و به چنان دفاغ افتاده بود در یک درد دل, دل در گوشی مارم نصیحت می‌کرد که با باشاریتی نمیشه زندگی کرد گفتیم چطور آقا گفتش که خدا یا به من اینا نداشتن و نخواستن عطا فرما یعنی خدای ما رو بکش نابود کن این که میشه زندگی لو این یک فکر استعماریه افتوجا پس این یک فکر استعماریه تو کشو بزرگی شاید می‌دید تبریک واسه می‌کنم به حال بدیم فارسی قبلا گفتم که تو واقعا اونهای بیشتر تحت تبلیغات و ستم های استعماری قرار می گیرند و به مصرف فرهنگ استعمار می رسند که حریستر و نیازمنتر و دنیا قلسترند آنهایی که بی نیازترند قناقت پیش گردند، کمتر تحت سلطه استعمار و استبداد ها قرار می گیرند. این چیز مسقنیه درست به هم داییدم هستش که مرحوم شدیتی میگفت که اگر امیدی هم باشه باز به همین حوزه های ما برای در همین حوزه ها که هنوز هم کسانی هستند که به نعمت نداشتند و نخواستند رسیدند لذا پایی کش قرار داده استماعی رو و زیر یو به هیچ استبدادی هم نرفتند این در تعریف از رشد و تکامل به نظر من اگر بخواییم ما بر اساس قرآن رشد و تقامل رو تعریف کنیم در همین سوره کوچک توحید که کوچکترین سوره هم هست کل راه رشد و تقامل تعریف شده این همون چیزی که گفتیم احدیت و سمدیت سمدیت یعنی بینیازی یعنی هستی در خیش هستی فضاحته یعنی به ذات خود رسیدن این این تقامل و انسان به میزانی که به این احد و سمد نظر داره و دوست داره بی نیازی رو بی نیازی از سر نداشتن رو نه بی نیازی از سر داشتن چون بی نیازی از سر داشتن هرگز در نفس بشر رخ نداده تا حالا هرگز هرگزم رخ نخواهد داد بنابراین حداقل و اساس یک شخصیت و اندیشه تکامل جو و رشد طلب پرستش مطلقه. مطلق مطلق یعنی اهد پرستی و سمت پرستی انسان به میزانی که بی رو و بی رو دوست میداره در واقع میشه گفت اون گوهره و جوهره حرکت تکاملی رو دارا هست و رو به کمال قرار داره ما باسته بدونیم که کمال یک جایی رسیدن و تمام شدن نیست که من بگم من کامل هستم ولی همینه امامای ما که خود اصفه های کمال هستند هرگز نگفتن که ما کامل شده این تمام خود حضرت فرمود که ناقص نمیداند از خیش را الا انسان کامل برای در دعای امامایمون در سعیفی سجادیه در دعاهای دیگری که منصوب به امام علی هست و سایر ما میبینیم که در اونجا آنها چنان در آستانه آن مطلق آن احد و چنان عجز و ناتوانی خود را میبینند و زدج زار میزنند که آدم احساس نکنه که آدمی زیفتر و گناهکارتر از اینها هم بر روی زمین نبوده باباوه اینها هم گر گناه و بدبختی بودند حالا که اسمت و بینیازی و اینها شاهان جهان بودند. شاهانی در لباس گدایی. شاهانی که گدا بودند. بله ظهور ذات الهی در انسان این شکلی بروز پیدا می کنه. شاهانی که ظاهرا گدا هستند. ولی تمام گدایان جهان از طریق وجود اینها به قلم روی بینیازی را همینه که در واقع آنها وجه الله هستند. صورتهای الهی و جمال خدا بر روی زمین هستند. انسان خلیفه خدا است این محل ظهور ذات خداست. خداوند در آدم خاک که ظهور بکنه مظهر فقر و تنهایی مطلق. شاه گیرد در قدم روی صفات ارگز انسان نمیتونه به تکامل برسه قدم روی صفات قدم روی هست که انسان های جاهز میکنن از طریق صفات خودشون رو اثبات کنند و به خودشون احساسی وجود ببخشن قدم روی صفات یعنی چی؟ یعنی داشتن و نداشتن خوب و مهم بودن و مهم نبودن عزیز بودن و خار و زدیل بودن محبوب بودن یا منفور بودن و الى آخر برای همین انسان اگر بخواد خدا را از طریق صفات خودش بشناسه تازه یک مشرک شده و در چنبره دوگانگی ها میشه و خدا هرگز در این ولم شناخته نمیشه و قابل پرستش نیست برای همین کسی که امام نداره نمیتونه خدا را اصلا درک کنه و دوست داشته باشه خدا فقط در وجود امامی که دوست نیست، برای اینکه مهد زهور عشق و محبته به بیان دیگر انسان کامل امامان یا الله و عباد الله المخلصین یعنی مطلق شدگان و کاملان اینها به لحاظ احساس بشری و درک انسان درک مخصوص انسان اینها فقط و فقط و فقط یک چیز مثبت رو آشکار میکرد. از لان های عشق بودن اینها خورشید عشق و مهربانی و شفاعت پروردگار بر روی زمین بودن اینها حالا همین اینها نعمت ها بودند تمام مردمان از وجود اونها به دربه های رحمت خدا دست میافتند در حقیقت میشه گفت اینها سلطان عشق و محبت بودند چرا برای اینکه ذات خدا عشق اگر میگیم خداییت خدا همون خلقت و قدرت آفرینندگی اوست او از عشق آفرید و بر اساس عشق و محبت و کرم خودش آفرید از امام صادق مثال میکنم که خداوند انسان را از چه چیزی آفرید و برای چه آفرید گفت از روی کرم و محبت خدا آفرید و از کرم و محبت خودش آفرید برای همینه میشه گفتش که اگر بخوام بیانی محسوس از ذات داشته باشیم ذات یعنی عشق عشق نامشروط به همه ی آدمیان و نهایتاً حتی دوست داشتن دشمنان خود این دشمن خود و دوست داشتن این کمال ظهور عشقه و امامان ما و تمام مختصان و عارفان کامل در طور تاریخ که درجات گناگون محل ظهوره محبت الهی بودن محبت الهی نیه همان ذات بروردگار بنابراین راه کمال راه عشق، و رسیدن به طبعات و طبقات و درجات محبت و محبتی خالص و خالصتر برای همینه که قلم رشد و تعالی و بالا از نردوان تکامل یعنی گذشتن از صفات از خود گذشتی که میدیم ستی تری من کام گذشتن از فرکن کن مال دنیاست بلکه اساسش گذشتن از صفاته برای که خود مال دنیا به خودی خود برای انسان پدستیده نیست انسان مال رو به این دلیل دوست داره و میپرسته و سرودندوزی میکنه که از این طریق احساس بزرگی و عظمت و برای لحظاتی احساسی بی و شاهی می کنه از صفت شاهی بی و احساس عظمته که مال دنیا رو پول و قدرت رو با ارزش جلب میده برای انسانهای جاهل بنابراین مهمتر از گذشتن از مال گذشتن از صفات اینچینی نیست. گذشتن از کبر و غرور است گذشتن از از این بودن مهم بودن و محبوب بودن چرا برای اینکه انسان ثبت میکنه. اطور این میکنه تا محبوب باشه. ویژگی که انسان دل میکنه از محبوب بودن در نزد دیگران دل میکنه از اینکه پرستیده بشه. خب اصلا اراده به محبوبیت و پرستیده شدن خودش تخم کفر چرا؟ برای اینکه انسان لایق پرستیده شدن نیست. خداست که باید پرستیده بشه و لایق رو دونه، نه انسان. پس اراده به محبوبیت تخم کفر انسان هر نوع محبوبیتی حتی من برم هنرمند بشم یا دانشمند بشم تا دیگران منو دوست بدارن این ماهیتی کافرانه داره برای همین دانشمند میشم هنرمند میشم ولی در عمل انسانی تباه تباکار فاسق علیل زلیل و یوزه یه زمین و زمان هستم محبوبیت نیست سوزن مشهوریته انسان از این هرگز محبوب قلوب نمیشه فقط مخلصینن که محبوب قلوب میشن و چه با اسلام مخلصین رو حتی دشمنانشون هم دوست نمی... نمیتوند دوست نداشته باشن. ما می دونیم که اسلام حتی معاویه هم انجو رو دوست داشت و نمیتوند دوست نداشته باشه. ما این رو ما می دونیم. این دشمنانشون هم نمیتونستند دوست نداشته باشن. به که صاحب دل خداست. و زخ خداشون این حال دوست داره پس شریت ترین قلوب هم نمیتونستند که این اولیای خدا رو دوست نداشته باشن. بنابراین انسان از تایر اینج مسائل از طریق صفت پرستی نمیتونه به محبوبیت برسه به مشهوریت نمیشه مشهوریت محبوبیت نیست این دو تا رو باید تفکیک کنیم بنابراین انسان به میزانه که از صفت پرستی دست برمی داره در واقع در کلام رو به کمال و روی به مطلق و احدیت و صمدیت و بی‌نیازی قرار داره به میزانی که دست از استفاده خیشتن در کلام رو به استفاد دست میکشه، استفاده خیشتن اینکه من میگم من هستم اوف بخیر خدای که هست به خودی خود هست من مربوط و منصوب به خدا هستم حتی از آرق خودم روی خدا در من هست چون هست پس من از طریق روی خودم به خدا مربوطم و منصوب به خدا هستم لذا هستم و هستم میتونم همین موجودیت فیزیکی و جسمانی رو میتونم داشته باشم پس اصفات برای اینکه من میگم من هستم و من به خودی خود هستم خود همین کفر است و خود همین ما رو به در میگه میکشونه و همین صفاتی را که در جستجویش بودم که ثابت کنم که چقدر خوبم این مردومان نگاه کنید چقدر عالی هستم چقدر بزرگوارم چقدر عالمم هم همه اینا تف سر بالا میشه و هیچ برای من محبوبیت حقیقی و قلبی در نزد جهان و دید نمیاره نابراین انسان به هیچ صفتی نمیتونه واقعا برسه پس آدم حکم میکنه که دست از صفات پرستی ورداره دست از اهمیت خیشتن ورداره دست از اثبات خیشتن در قلم رو صفات ورداره به سمت بینیازی بره بینی بینیازی بی از طریق نداشتن و نخواستن بره اینه سمت تکامل و قلمرو رشد و تعالی معنوی که انسان در واقع روی به پروردگار و در واقع روی به ذات خودش میکنه چون خداوند ذات انسان خداست با قول علیه علی السلام خود خود انسان خداست زات ذات انسان خداست در واقع از این طریق انسان قلم روی صفات رو می از آنها عبور می‌کنه از طریق خودشناسی و تسکین نفس تا به قلم روی ذات که قلم روی بینیازی و احدیت و سمدیت بلم یلد بلم یولد حدود تا انسان احد یعنی به بیتایی برسه اونجا قلم رویست که انسان ها اثبات میشه حتی دشمنانش هم او رو اثبات میکنند دشمنانش هم اون رو اثبات نکرد چه رسد ببین میگن عشق به این, میگن به این همون عشق به خداست نه اون عشق به ذات کیشتانه برای انسان خدا رو دوست داره در واقع ذات خودش رو دوست داره برای انسان میذارن هم که خدا رو دوست داره خودش شون میتونه دوست داشته باشه انسان صفت پرست شون چون همیشه در تلاشش برای اثبات صفات های نیکو برای خودش همیشه شکست میخوره و خودش هم در نظر خودش میبینه که درست چهار روز تونسته به دیگران به بباواره انی که چقدر خوبه چقدر عالیه ولی خودش میدونه که چقدر ذلیل چقدر فاسده چقدر حریسه چقدر حریسه به چون انسان این صفات ها رو در خودش میبینه و به میزان که صفات پلیده انسان نمیتونه خودش رو دوست بداره خب انسانی که نظر خودش رو دوست بداره یعنی خدا رو دوست نداره و نمیشه رو دوست بداره انسان وقتی میتونه خودش دوست دستور که رو بذات داشته باشه با استفاد گذشته باشه این بهش میگن عشق ایثاری عشق ایثاری علادی باطنین یعنی گذشتن از ها من میخواهم خوب باشم در چشم دیگران تا پرستی بشم از این واسه بگفتم من میخواهم عزیز باشم من میخواهم عزیز باشم در چشم دیگران ببین در چشم دیگران تا دیگران منو دوست داشته باشند یعنی ببرستند ببینید پس اراده به محبوبیت عین کفره برانگیر فقط خداست که محبوب است و مطلوب است و محمود است و مصود است و مخصود است انسان نیست ولی انسان به میزانی که روی به معبود و محبوب است و از صفات می و از مردم پرستی که همون خودپرستی ناحقه دست میکشه، انسان حتی محبوب دشمنان خودش قرار می ولی انسان به قصد محبوب شدن البته نمیتونه این را رو طی بکنه. انسان خودپرست که می در حقیقت این واجه واجهی ای وارونه می فلانی خودپرسته و تو برش اگه بریم ببینیم که چقدر از خودش بیزاره یعنی مازوخیسته فکر میکنه که خودش رو بتونه دوست داشتنی کنه بعدی بفرسته و بفرسته ولی هرگز توانه دو سادی یه که خیلی آدم خوبی است با حال بقول معروف فرداش گندی ازش در میاد و از خودش منزجر میشه و تازه از خودش فراری میشه و از خود ویرانیگی رو میتونه بنابراین مزاری از خود ویرانیگی که امروزه که از مهمترین مسائل روابط و حتی فلسفی جدید هست حاصل صفت است. انسان به میزانی که میخواست استفاده خودش براسته شکست میخوره رضا از خودش بیزار میشه، رضا از خودش قهر میکنه رضا پشت به خودش میکنه و این همان گمراهی است. در قرآن داریم که هیچ کس گمراه الا بر خودش گمراه شد. یعنی پشت به خودش شد. و خودش رو از یاد برد و تا حدی که دو از خود فراموشی شد. این از خود فراموشی یعنی خدا فراموشی. باز در قرآن داریم که, که خودش فراموش کرد، خدا فراموش کرده. کسی که خودش رو بیاد میاره خدا رو بیاد میاره کسی خدا رو بیاد میاره تازه میتونه خودش رو بیاد بیاره این هدایته پردنسان از طریق پرستش استفاد خودش و خودش پشت میکنه یعنی خودش رو گم میکنه و گمراه میشه گم شدن و گمراه شدن این خود رو گم کردن که نتیجه طبیعی صفت پدستی به میزانی که من سن میکنم در همسر و بچه هم و فکر و, و دوستان آشنایانم محبوب بشن و پرستیده بشن این همون کفر منه و همین باعث گمراهی من میشه چرا برای اینکه به تجربه محلوم شده که چیزی عملی نیست هیچ چیزی پرستیدنی در قدم روی صفات نفسانی در انسان وجود نداره تمام طبقات نفس انسان دریوزگی، هرس، درماندگی ماندگی، جرز، جنون، مالی، و هرزگیست و هیچ چیزی نیست که قشنگ که فلسطی دنی باشه، آدم خودشم نمیدونه خودش رو بفلسطه این خودپلسطی یک جهلی در حقیقت فقط عارفان کاملا میتونن خود رو بفلسطه هستند در خود خدا رو یافتند این خود دیگه صفات نیست، ذاته در واقع این خودپلسطیشون خداپلسطیشونه اتقا به نقصشونه، اتکاب به ذاتشونه پس این دونو خودپلسطی کاملاً متوابطه خودبرستی بدم روی جاهلان و کافران هم یک معنای واژگونه داره تمام صفات و معانی وردش های جهان کف مفاهیم واژگونه و دیالکتیکی داره هر معنای ضد خودش عذاب داره میاد بنابراین انسان مطلق نمیتواند باشد ولی میتواند روی به مطلق باشد و مطلق رو دوست داشته باشد و مطلق رو بپرستد که فقط در این صورت میتواند یک زندگی نسبی متعارف و متعادلی رو داشته باشه چهار افراد و تفرید چهار زلالت ها و دریوزیگی ها نشه این یک چیزی محرز بنابرای این تکامل یک تمام نیست روی به کمال داشتن همان قلم رو تقامل برای همین کسی که انسانی که روی به مطلق داره هرچه خودشون نگاه میکنه میبینه که چرا کنن آگسته. بگوییم حضرت علی فقط انسانهای کامل خودشون رو ناقص میبینند. فقط انسانهای واقعاً عالم خودشون رو جاهل میبینند. فقط انسانهای واقعاً مومن خودشون رو کافر میبینند. انسانهای واقعاً مخلص خودشون رو می بینن چرا برا که نفس با خودی خود مشرک از تو کافر است، تو زالیم هست تو، بگو دوباره زلومان جهول است. و میزانی که انسان اینها رو در نفس خودش میبینه ازمیان برمیخیزه بغلافز تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز یعنی از نفس برخیز برو بالا و شاهد و عارفه بر نفس خودت باش یعنی محات یعنی محیط بر نفس خودت باش یعنی اشراف داشته باش یعنی فرمانده و سلطان نفس خودت باش یعنی صاحب اراده باش یعنی اراده خودت رو به دست آن مطلق بسپار یعنی مورید مطلق باش درسته انسان در رام رو حیقی دونیوی هرگر به این مطلق گرایی خود رو اثبات کنه نه خیر هیچ کس نتونه قرار نیست پس روی به کمال بودن یعنی روی به مطلق بودن انسان به میزانی که مطلق پرسته نا پرست واحد پرست یگانه پرست و اخلاص برسته، و اخلاص و تکامل رو و بینیازی مطلق رو دوست می داره در واقع درگنم رو رشد و تکامل قرار داره و این انسان دارای رشت است و روز به روز دارای ازت لذت تعالی و لطافت و آرامش و قرار وجودی میشه شه درجات تکامل درجات آرامش و قرار انسانه درجات بینیازی انسانه درجات ازت و سلامت نفس انسانه و به قول حضرت علی تا جایی که اگر کوها به بند چه این انسانی از جای خودش نمی جنبه برای اینکه ترسی نداره ترس از چی چیزی چه چی چیزی رو از دست بده بارستی او پیش تمام آن چیزهایی که تبا شبنده هستن رو و تباه کننده هستن رو از خودش انداخته، پس او در مقر عبدیت قرار داره در حدیم الانی قرار داره در حریم خدا که کسی نمی درسته در این خدا کسی از تباهی و نابودی نمی زیرا حریم امنیت و حریم ایمان هستش خب پس عنوان جنبندی ما از اینطور گفت انسان کامل یعنی انسان صاحب هستی فی نفسه به قول جدید انسان هستیدار یا اگزیستانسیالیست یعنی هستیدار منطقه این فلاصف اگزیستانسیالیست اگزیستانسیالیست نیستن بلکه طرفدار هستی هستند به قول مروس هستی هستند اگزیستانسیالیست یعنی هستیدار صاحب وجود عباد الله المخلصین امامان و اولیاء خدا هستند. امان که کومونیس واقعی همون ها بودند آزاد ها و آزادیخه و های واقعی هم همون ها بودند دمکرات یعنی مردم دوستان واقعی همون ها بودند پس انسان کامل یعنی انسان هستیدار کسیست که بلا وقفه در خودش نمیبینه یعنی ورود در روی نیستی خودشه برش نگاه میکنه در جهان نشانی از هستی در خودش نمیبینه فقط هستی خودش رو میبینه خب اون کیست که هستی رو میبینه و عدم رو درک میکنه اون خود وجوده خود هستیه که میتونه نیستی رو ببینه و درک کنه درجات درک فنای خیش همون درجات درک هستی خیشه انسان به میزانی که دارای هستی هست میبینه که نیست و هستی فقط خداست همونطور که انسان به میزانی که عالمه هرچه نگاه میکنه جز جهر در خودش نمیبینه انسان هرچه که جهر خودش رو عبیقتر و وسیلتر ببینه نشون میده که به قلم رو و کانون علم که خود خداست نزدیک شده در واقع آن چشم الهی انسانه که باز شده و از انسان جز نیستی نمیبینه از علی علیه السلام هیچ کس به قصد عالم شدن عالم نشد هیچ کس به قصد اینکه میخواست عارف بشه عارف نشد هیچ کس به قصد اینکه گفت من می‌خوام متقی بشم متقی نشد یعنی خلاصش هیچ کس به نیتی اینکه خواست بهش درسه بهش نرسید و اتفاقاً برعکس به جهنم رسید پس این راه راه سوداگری نیست این سخنیالی سرراست در این راه تکامل و هزار توی راز و رمز پیچیدگی انسان رو نشون میده انسان فقط به قصد رضای خداست که به درجاتی از علم و و عرفان و هستی و بهشت در هم دنیا میرسه ببینید در قرآن کریم به مثلا ایند متقین فی جنات النعیم یعنی متقین در جنات نیم پروردگاه هستند خواهند بود هستند امکنون تمام این نوع آیات زمان حال آینده نیست من خواهم شد نیست نخیر مربوط به اکنونیته این هم یکی دستار قرآن شناسی و فن آیات نیست در مورد جهنم ها اینطوره این کافران ها در این طبقه از دوزخ هستند و دارای از اوپا هستند و البته در آخرت و از مرک از بیشتر خواهد بود همونطور که متقین نعمازشون بیشتر خواهد بود پس نشانه های آخرت همین اکنون هم هست پس اینها زمان نیست اکنونیت ولی نشانه ها رو در همین حال هم بیشه درکیه بنابراین انسان فقط از طریق بعض و بخشش های مادی و ایسارگری های نمایشی و نمادی نمیتونه در راه تکامل و سیر الله قرار بگیره اتفاقا میتونه برعکسشن باشه انسان به میزانی که برای اینکه محبوب خلایق بشه و باسته خلایق پرستیده بشه و هورا هر هرچه بیشتر بزل و بخشش میکنه اتفاقا رسفاتر میشه و همون مردمان چه باسه ببینیم براش کولپوری میخوانند و مسخره اش و دشمنش هم میشن. و تمام مردمان همون مردمانی که پول می دشمنش میشن. این حقه. این کار خداست. چرا برای اینکه او برای اینکه خودش رو به جای خدا بر مردم غالب کنه و مردم رو از خدا پرستی باز داره و به خود پرستی خودش بیشونه داره به مردم پول میده. مردم خیرات میده. کمک میکنه. چه این عملی در واقع میشه گفت هرچه که این خیرات ها بزرگتر باشند اتفاقا کفر بزرگتری رو و لذا نفرت و درنت بزرگتری رو برمقان میارن و ما میبینیم که به نظر همین آمریکای جهانخار گوزفه جهانخاریست و مردم خاریست که دم از دموکراسی و آزادی و عشق رو بشریت میزنه ما میبینیم که از یک طرف بر سر مردمان آفریقا و آسیای جنوب شرقی به کوپیت و نقل و نواد و شکلات و پتو میباره چه روز بعد این بم میباره. چرا برای اینکه که با اینکه این هم نقل و نبات داد به مردمان گرسنه مردمان او رو نفرستیدن که مربوط امریکا هم گفتند و اینه که می بموارام میکنه مثل افغانستان۱ سال این همه کمک فرستاد. این همه پول پرادین این نقل و نبااتش که خشک فرستاد و دید که افغانیا تنها آمریکا برست نشدن وبار که دعا میقا اون وقت بمب بارید این بگنمونه جهانی و از نفس انسان طبعاً امپریالیسته جهان خاره. میخواد خودش خدا باشه نمروده حتی اگر نماز بخونه این قضیه هست ببینید با نماز کندن و خیرات و صدقات این مشکل انسان حل نمیشه. این مطلب در قرآن مکررا در آیات متابعتی اومده که ای آقا این کارها رو نکنین ای ها این شکلی نمیشه خدا رو فریب داد مردم ها رو نمیشه فریب داد وقت خدا رو مگه میشه فریب داد مردم عادی حتی فریب نمیخورند این از این طریق نمیفرستن شما پولدارها رو که نقوم نواد میفاشید برای مردم این نفری بود پیش بار دقیقی میکرد میگفت خدا نیمون نمیدونیم هر وقتی ما مخطوصا در ماه معرم یا ماه رمزون افتاری میدیم نمیدونم خیرات میکنیم به مردم این همه دستگیری میکنیم به مردم به ییم ها می رسیم مدرسه هرچی که ما این خیرات ها رو بیشتری میکنیم اتباقا در اوج این خیرات و مبرات از آبه ها و بعد وقتی ها از این بر ما میباره. این چه سریس نمیدونم. حتی ایشون گفتش که من فکر کنم خدا هم از سخر ها دیبونه شده کتا ن خدا دیون نشده. شما در مک خودت گم شدی و فکر کردی که تونستی خدام به فریبی چ می بینید خدا, رو بی. خدا نخورده اون. وقت نسبت جنون رو به خدا میدی حالان که شما خودت در مکر خود دیوانه شدی و فکر کردی که خدا هم فریب خورده و خدا فریب نخورد نابرین این مسائل رو با باستی ترک بکنیم ما از حضرت علی در از سخنان داریم که واقعا تمام اسرار بشر رو اشکار کرده تمام خود فریبی های بشر رو اشکار کرده در جا دیگه میفرماد که هرگاه که ایم امنان که دیگران را پاک کنید، تربیت کنید هرگاه بی بیتربیتی بیتر و نقصی در دیگران دیدید به اون نقص عیب در خودتون بیا و اون رو پاک کنید و بعد چه بسا خواهید دید که دیگه اون نقص عیب در دنیا در جهان در مردمان دیده نمیشه خب این کم حرفی نیست درست به همین دلیل دیگه چه این انسانی که این شکری عمل میکنه برا همین باز در جای دیگر در که. امامان اونارو که نقصی در کاری جهان جهانی دیدید، از شرک شماست، نه قفسه و جهنم شماست. توبه کنید به برابر خدا از چنین فهم غلطی که داشتید. خب، درست به همین دلیل که خدا از علی میگه که من هر چی نگاه می‌کنم جز خدا نمیبینم جز اراده الهی در جهان نمیبینم یعنی هر میبینم می‌بینم همش حق است. همش لطف و رحمت الهی است. خب، ببین ترتیب پس انسان کامل کسی است که جان رو کامل می‌بینه. و هرچی بیشتر جان رو کامل می‌بینه، نقص خودش رو میبینه تا آنجا که جمال پروردگار رو در جهان دستی میبینه همونطور که علی میدید ابن عربی بزرگترین فی و عارف مشرب جهان اسلام میفرماد که از امت محمد نیست کسی که به امید دیدار خدا در این جهان نباشه یعنی در قرآن هم هست میگه آنهایی که از دیدار خدا معیر سدن اینها کافرند ببینید البته واضحه که هر کسی که بوی از این ارث میراثی مو خورده این اعتقاد ذهنی درش کم پیش هست که به همه در روز قیامت خدا رو خائن دید تقریبا کسی ممکنش نیست پس استغذی امید به دیدار خدا در همین جهان در همین جهان هستیه امید به دیدار این مطلق یگانه بیتاست این امید همان نور ایمان و تکامله و انسان رو به بینیازی در جهان هستی میرسونه انسان وقتی که هر عیب که در گراندید رو برمیگرده میبینه که این عیب خودش بود به سرسیب عیب زدائی میکنه کامل میشه اونقدر کامل و پاک میشه تا میتونه اون پاک کامل مطلق رو در جهان دیدار کنه یعنی وجود مطلق رو در جهان دیدار کنه وقتی که رو در روی وجود قرار گرفت از خود جز آدم نمیبینه عدم در حضور وجود و لذا در آن که جدا از وجود طلبی وجود که کنه که پروردگارا از وجودت به من هم ببخش ای وحاب ای بخشنده به من هم وجود ببخش و مرا از نابودی برهان و که خداوند به او وجود می بخشه انسان باستی طالب وجود شده باشه طالب کمال و نیازی شده باشه انسان باستی انگاه خداوند به اون موجود نی بخشه موجود از القاب حضرت علیست یا مولا و یا موجود تمام اثان و به مقام وجود رسیدند یعنی موجود شدند موجود شدند موجود یافتند یعنی همون احد سمت و بیتا شدند و بی نیاز شدند است خداوند از مقام ارجمان روحانیش همین بس که این آدم ادمی رو جانشین خودش کرده این از عشق مطلق اوست بنابراین اینکه بگوییم انا الحق من خدا هستم خود این زدن و کفری بالاتر از هست قدم است زیرا خداوند انسان رو خلیفه خودش تن جانشین خودش کرده یعنی وجود خودش رو به او بخشیده و خود بر عرش فنا قرار گرفته. پس عشق خداوند و رحمت مطلق او به انسان چنان است که انسان رو بر خودش ترجیح داده است. عشق همین اگه که خداوند از عشق جهان را آفرید، از اشد محبت و کرم و رحمتش آفرید به این معناست که خداوند آدم رو وجود بخشید و خودم خودش رو محو کرد برای ما خدا رو نمی‌بینیم. برای ما خدا نمی‌بینیم. خدا قایب مسئول میشه این از کمال عشق اوست به انسان بنابراین خداوند انسان رو بر خودش هم ارجه دانسته و ارجهیت بخشیده پس ما اگر بگیم که من خدا هستم پس اراده به خدا شدن از حماقت بشره از کفری بشره از کملطفی بشر به خودشه این بخواد دروقع همه انسان ها هم بخواد خدا باشم کافرین همین اینکه هنگامی باشم غنی باشم محبوب باشم مشهور باشم توانا باشم کنفه‌ای کنم یعنی میخوام خدا باشم دیگه ولی خداوند چیزی برتر از این رو برای انسان آفریده جهان هستی رو تجلی صفات خودش قرار داده ولی ذات خودش رو به انسان داده از انسان محل ذات خداست و کل جهان و کائنات محل ظهور صفات خداست پس در واقع من اگر بخوام به این نوع برسم یعنی خودم رو در حد جمادی و نباتی تنزل دادم و خودم رو تحغیر کردم و حقیر میشم همونطور که انسان کافری که که صفت پرستستند در واقع همش خود آزاری و مازخریز هستند و لذا به نفرت از خود میرسند به نید خودپرستی به خودبیزاری و خودفراموشی میدیسن و زلالت همینه تا جایی که از فرد این هم زشتی و تبایی و شکست اصلا نیحان خودشون رو فراموش کنند و این همون فراموشی خداست و خدا رو فراموش کردن این زلالت مطلق بنابراین باستی برونیم که کمال انسان از چشم خدا این است که انسان از خدا هم برتر است خداوند ذات خودش رو به انسان بخشید و تمام استفادهش رو به جهان بخشید. جهان یعنی مسائل استفاضه خدا و انسان یعنی مسائل ذات خدا خداوند احدیت و صمدیت خودش رو به انسان بخشیده پس انسان فقط میتونه احدیت و سمدیت رو در خودش پیدا کنه این حق انسان و انسانیت انسان و انسان به میزانی که این دکتر رو رو میبینه و درد میکنه و میکنه و روی به احدیت و صمدیت ذات خیشتنه یعنی روی به انسانیت خیشتنه و مقصود خداوند است خلقت خویشتن رو محقق يرده و خداوند چنین کسی رو دوست داره و او را کمالیت خواهد کرد کسی که میخواد زیبا باشه، خوشگل باشه، فعال باشه، پولدار باشه، شاه باشه، بالاپایین کنه، بتونه نمایش خود خدایی در بیاره، تأثیر خود خدایی در بیاره این انسان انسانی سبب خودش رو حریر کرده، جز اپتال و الگوایی و از خود بیزاری که دیگه این نصیبش نمیشه. پس ما واسه بدونیم که راه تکامل این که ما بسید بتونیم که از کمال چیه؟ کمال انسان در دستگاه الهی و از منظر اراده الهی این است که خداوند انسان رو بر خودش ارجه قرار داده ذات خودش رو محبت کرده به انسان یعنی خلیفه کرده چی؟ مثل شایی که تای سطنت خودش رو به این نفر دیگه یه خلیفه یعنی یعنی همه این هم آقا من میرم گدایی میکنم و تو شاواش بر جای من دقیقا همینطور وجودش رو یعنی ذاتش رو انسان بخشیده و خودش مه شده بر عرش فنا عرش که یعنی عرش, عرش فنا و انسانی که به وجود خدا رسید در قلب رو ذات قرار گرفت آنگاه چشمش بر عرش خدا باز میشه و میبینه که نه هستی او بسیار برتر از هستی، یعنی خداوند برتر از هستی او نیستیه بنابراین وجودگرائی در فلسفه اسلامی نیست خودش کفره آنهایی که سعی کردن دیگم وجود همون قدر است به نظر من این همون کفره درسته یکی از آلیترین حد فلسفه وجودگرائی بوده مثل مکتب اصادت وجود ملا صدرا و خیلی از فلاسفه آرخ مشغل ولی آن معرفت ارفانیی که در اسلام و در حکمت الهی ما درک میکنیم بسیار برسر از وجود است وجود گرایی کفر حساب میشه از دیدگاه عرفانی الهی عشق گرایی عرفان گرایی معرفت گرایی اینینه حق خداوند برتر از موجود است تو که به انسان بخش و او برتر از وجود است خداوند عشق مطلق نو مطلق و سبا.